تو موتورم نه ایمدی رفته کار داشتم چهت بود امروز هیچی خوب نبوتی از توانی بودم چرا برای کامیار هم خوب نبودی چیزی شده نه چیزی نشده من با رامین حرف زدم گفتم اگه بخواد از کامیار پول بگیره منم نیستم اوه کجایی الان ایرونه میه کافه کفهم و اسمایی آشه ایروز دیگه اون اصلا ندیدیم همون گفتم که دارم باشه فردا میگه دفتر اینشالله خدا فیسیم سلام آقا الان در رو با م میخوای بچه میدممعمل کار من؟ چرا تلفون جواب نمیدی جواب بدم که چی بشه؟ خام خب نتیجه بدونم، قطع تو نمیدونی نتیجه رو غیر رسمی چیزیی شننیم میخوام خب خیام راچ خب خیالت راحت بشه که چی؟ زدی به ترکوندی؟ چی؟ دنبال چی هستی تو با چی پشمونو زدی کتککاریمون شد خودش هم شروع کرد همهشا بودم چرا فرار کردی پلیس دنبالته. چی میگی بابا یعنی چی حرفا به قصد کشت زدیش افتاده بیمارستان تو کماست اصلا به این جایی که تو میگی نکشید ما تو در شد کارگره اومدن سوا کردن هیچیش هم نشده بود پجمان شرط میگی دیگه شب برگشتی زدیش پلیس اومد اینجا من به کل منکر شدم که تو رقمو به گفتی خودت هم عواست باشه اسمی از من نهیری برو دیگه این برام پیدات نش بخورد می پایمیستم دادش بیاد با هم بخوریم چی شده مادر نگرانی چی هستی؟ نگرانه آقا پشمانم بند خدا چی بلایی سرش ماد یعنی واقعا سامان برگشت و زدتش؟ به اعتمادش هست چرا باید این کار کرده باشه نمیدونم این هم مدت من رو بازی داده بود فقط دنبال رقعی مزایده بود همین حرفاش دارم ستارماش هاشرهتم همش دروح بود دل کن مادر دیگه به این چیز رو فکر نکن چرا با من کار کرد؟ از اول بهت گفتم گفتم اعتماد نکن، گوش نکردی دیگه ظاهرش اصلا نشون نمیداد. هنوزم بابرم نمیشه خدا کنه پیدا بشه ولی این کاراش باید جواب بده از سلام سلامو سلام سلام بابا شش شدم اوه وقتی پیدا کردن تو بیمارستان چه خبر همش همهش اونجا چ... چیزی پیدا کردن؟ نه هنوست همینجوری در از هنگ بازشویه میکنم دنبال سامانن. هم شادی واقعا تو رقمو به سامان دادی؟ جواب بده گفتم که از دهنم در رفت چرا باید این کار بکنی؟ چرا به اون گفتی؟ به کسی دیگه ای نگفتی؟ ها؟ خب اون ازم پرسی من چه میدونستم چه منظوری در آخه؟ برای چی سوال کرد؟ راستش رو بگو این سامان کیه شادی؟ اون اصلا تازه اومدتون شرکت نمیدونم بیرم شون شو بدم بیا تو شادوی پسر چیزی بوده بوده یا نبوده مامان رو دوست داشتم میخواست بیاد خواستگاری یعنی سر کار گذاشته بوده تو رو خدا خودش به اندازه کافی ناراحته شما چرا گذاشتیم من چه میدونستم اینطوری میشه گفت جوون معقولیه قصد ازدواج داره اینا رو برچی میخوایی؟ بخوایی که دوستم خراب شدارم یه هم درستش کنم این وقت شب مگه تعمیرکار قطیه کسی پیدا نکرده خونه سرد چی هست این دوستت؟ شما نمی خب بخلا شام تو بخوا بد برو نه خیلی دیر میشه تا چی داریم؟ کتلت خب چند تا تو ظرف هزار میورم اونجا میخورم باش مشکل داشت الان نصفش کنن دیگه ایشاله خونه گرم میشه برای تون کتلت رو شام نمیخورین تو خوردی؟ بله کارم تمام شه میرم بخونه بعد باید برم بیمارستان آخه این وقت شب آی سیوراتون نمیدن که باشی از پشت شیشه که میتونم بچه رو ببینم شده زودتر خوب میشم یا خونه؟ باید هم خوب بشه نازنینم، پسرکم آزارش به یه موچه هم نرسیده بود نمیدونم این از خدا بیخبر کی بود که این برار رو سرش آورد نفرینش نمی کنم ولی از خدا می خوام که سر تقصیرش نگذره جای بچه من رو تخت بیمارستان نیست این شب قرار بود بریم براش خاستگاری آرزو داشتم عروسیشو ببینه. بچم به قاطر من بیسار و سامونمون الان وقتش بله بابا چه خبر ها. نه نگران نباش یه جوانی منو رسون بخاریم خراب بود درستش کرد هر برو حت کن تو خودتو علاق کردی؟ آره؟ آره آره نگران نباش خداافظ؟ سالالر میتونی بیا دف کردیه موضوع مهمیه اجل و خاوم نمی میتونن حرف بزنن یا به خطر زندگیم دلیل نمیده من سق و حقم بگذارم تو مهریت رو گذشتی اجرا بعد اون وقت میخوای با من زندگی کنی مهریت اندل مطالب است از همون روز اولا میتونستم بگیرم رفته به زندگیمون نداره تو که میدونی من الان ندارم بهت بدم چرا داری پول تو از شرکت بیار بیرون مهریه منو بده چرا نمیذاری کاری که شروع کردم و بدم؟ چون قبلا یه بار خونه ای که مال خودم امودو فروختی من اووردی اینجا اون فرق میکنه میدونم دارم چیکار میکنم خیلی خوب افرین ادامه بده ولی مهریه منم بده داری زندگی اونو به هم بریزی من یادو ست تومن اون پولم مال منه اونم باید پس بدی اگر ندی از, از شکایت میکنم کنم، و شرکت رو توقیف میکنم کتک کاری نبود این چه کاری بوده کردی من از حالیم نبود چه کاری کرده صورت شادی کبود بود از فکر این که یارو زده باشدش داشتم نمی میشده حدو تو مطمئن که شادی قیمت مزایده رو به اون پسر گفته چی کار کنه نمیدونم اگر از کمادر نه نباش خیلی جای کمادر خیلی حالم ساله ازم بابرم نمیشه که به کاری این لحظه چه بده سر بودم یه پدر پیر داره که این از دستش بوده بیانش دو حالت پیشتر نداره یه از کنم بیرون که ما همه چیون میگه خیلی برات بد میشه برای اینکه تو همه این مدت همینچو پنهون کردی یا اینکه خدای نکرده خدایی نکرده زبنم لال دست پولیس رو دیگه هیچ امیدی نمیمونه من چیکار باید میکنم ساده ها چیکار کنم همین که رسوندش بیمارستان رو به خونه و خبر دادی بردی پوهن مصبت آرش برو همه چی بگو من نمیتونم چطوری برم بگم پسرتون رو زدم و به این روز ناختم ها جذره بگم فکر تو که عمدی این کارو نکردی اورش جان اگه نری معلوم نیست چه اتفاقی میفته وقتی که هیچ امیدی به بخششت نیست تatilde. دلش اس کردام تعطيله. سلام. سلام بفهمین. من مشتری نیستم. یکی فایده کردم. این عکسوهات هم اینجا گرفته باشم. میشتسم اشون بدین کیفو که امرم بدم نه دیگه مشطلق میخوام چرا ردی پورتوش بودم اگه حالا هر چقدر چه فرق میکنم کلی گشتم تو اینجار پیدا کردم خوش بخالی که نمیشه من چیکار میتونم واسط بکنم یه لحظه خودکار تو داریم این تلفن باره هم باید همان بگی دو من زنگ بزنم اسمتون شب خیلی خدافز خدافز ما بریم بس. کجا میری شرکت ای خود لازم نکردی به کار. چرا؟ چرا؟ سامان کیه؟ بسیدم سامان کیه؟ یکی از کارکانه شرکت برای چی رقم موضوعی داره بهش گفتی ها؟ همینجری پرسید منم بهش گفتم چند وقتی میشنسیش؟ سه ماه سه ماه چرا اینقدر بهش اعتماد داشتی؟ آدم بحرامی بوده؟ نمیدونم اوتو چیکار داشت؟ برای چی رقم مزایده رو می‌خواستی؟ از شادی خواستگاری کرده بود. خب برای چی من خبر ندارم؟ پدرش به خودم می‌خواستم بهت بگم. مثلا اون روز که به در شرکت زنگ زدم گفتم زو تبیا خونه واسه این بودی می‌خواستم بهت بگم. بچا تو بود. اومدی از این خونه استر رونا پدرش با ما دعوا کرد. اون که مالش چنشاپیشه. چرا قبلتر بهم نگفتی؟ بزرگتر نشی بر تطوچه در بیاره ببینه یارو کی بوده، چیکارا تا کجا اومده؟ پدرش به خدا من می‌خواستم بهت بگم. الان کجاست؟ مثلا معلومه کارون بوده باشه، خاطر اون نمی‌خوام. لازم نکرده. الان یکی رو تقریبا بیمارستان افتاده. دوام مراقبه بسته. آرش بابا یه اتفاقی که افتاده الان این جرباستا چه فایده‌ای داره؟ الان کدوم گوریه؟ نمیتونم به خدا نمیدونم. تلفنش هم جواب نمیده. اگه بهت زنگ زد بعد قرار گذاشت به منم میگی میام. چیکار کنی، به منم میگی میام. حقم نداری دیگه بری شرکت. فهمیدی؟ بلیش کن آرش. شادی اگه نره شرکت فردا همه چیز میندازن گردنش. میگن حتماً می یه ریگی به کفش میده که یهو نیومده. پیورتو. مگه نگف نرو شرکت شرکت بگیره. چه شده؟ چرا اومدی اینجا؟ چه چیزی تو منظره چه اتفاقی من افتاده؟ تکیاسه ساما، چرا عمره بودی لطفاً؟ چی می‌خواستی بشه؟ آقا فشمون بیمارستانه تو کما است. چی؟ نمی‌دونی؟ به من گفتن درگیری شده زدنش زدنش رو زدیش برای چی تو بعد الان اینو به من بگی من چرا باید این کارو بکنم هر با چیو تو پدر آقا پجمان زدی تو چه که و دشمنی باشون داری پدر آقا پجمان ما رو به خاک سیانش شون پدر آقا پجمان یک کاری که ات بابای من سکته کنه بمیره پس با نقشه اومدی مای ما سرا من هم جز نقشت بودم داری دروغ میگی تو فقط به من نزدیک شد درقای موزایده رو بدونی و تو بریزی اصلا باید مهم نبود چه سر سربقیه میاد شادی من نمیخواستم اینجوری بشه چرا تلفنات جواب ندادی؟ چرا آدرستت دلکیه؟ برای اینکه که پیشمان نتونه پیدام کنه همین الان تو بیمارستان دلت خونک شد شادی گفتم نمیخواستم این اتفاق بیفته دیگه با من فقط میخواستم مایسارا را در بیارم و قسم بفهم من اومردیشم داره همین به پلیس اینا رو بگو دنبالت همه دیدن من اون شب از اونجا اومدم بیرون همه میگن اون شب برگشتی و هم درگیر شدی همه بیخود کردم من پیش رفیقم بودم شاهد دارم برو اینا رو به آگاهی بگو منم خواستم رفتم. تورو حد حسادم از رقم مزایده رو به تو گفتم فکر میکنم من با تو هم دستی کردم تو چه کسی خبر نداشت. باور نمی‌کنن میگن تو بری بهشون بگی من نمیتونم من پام برسه اونجا میگرم میندازنم تو زندگون داری میگی که همه چی بر علاق منه لاغل اینجایی میفهمن من بی گناهم. به من گفتن حق نداری پا تا از زهران بذاری بیرون ببین ساما منو بازیچه خودت کردی آب روی منو پیش برادرم و مادرم بردی اگه کاری نکردی میرو خودتو معرفی میکنی همه چی رو میگی اگه نرفتی بیشه پلیس دیگه سر آقا من همونی هم که دیروز با موتور آوردمتون. اصالامو جا گذاشتم. آقا سلام سلام روز بخیر. روز دیشب داشتم تلفن میزدم. یادم رفت پول بهت بدن همینجوری گذاشتی رفتی پول نمیخواستم که ایلا این دوستو خیلی برد گذاشتی رفتی ابزار رو بردی خاریم. و خیلی داری درست کردی کاری میکردم یه قابطو نداری خیلی زیاد آقای آه. تو باید پول در بیاری تا زندگی کنی. از شما درد نکن پسرتون چه دارن؟ دارم میرم پیشش خبر دارین ازش نامزدش پیششه میگه بهتر نشده از زارب خبری نشد هنوز نگرفتنش خدا خدا میکنیم که بگیرنش شاید نمیخواست این کار کنه اگر نه برای چی رسونتش بیمارستان؟ اگه بچه من از او تخت بیمارستان ساره بلند نشه آمان چه فرقی میکنه چه رسونده باشدش چه نرسونده باشدش اون نامرد از خدا بی خبری که بعد تو اونش پس بده با چی میری؟ با اجانس من بیری سنامتون نه نه نه از کارو زندگیت میوفتی نه کاری ندارم بیری سنامتون سر را میخوام یا سری بزنم به اداره آگاهی. اونو که تلفن نمیزنن خودم باید به گیرشت باشن بری آقا من جبهتران برنه دوشتن الان باشه بعدم برشه <تصفح> کسی آوردی چه بهتون داد کی بود چی هم که آوردی چه بهتون داد کارش درین کارش داره. نمیشه پس ماشین شما دستون چیکار میکنه مشتری ورده برای تعمیر دیدم با هم خوشبش بهش میکردی اسمش چیه نمیدونم آها آه شما اسم مشتریاتون نمیدونی خاطر شما دنبال چی هستین اسم فامیلی واقعی سامان همونگه سه ماه به دروغ با شرکت کار کرد شما کی هستین همکارش همکارش دام زده بودن ببینین آقا صاحب اون شرکت الان تو بیمارستان تو کما الان دنبال سامانن اگه با من همکاری نکنی من به پلیس اطلاع میدم ای بابا خانم میگم من نمیشناسم اون آقا رو به چه زبونی باید بهتون بگم اینا رو به پلیس بدین تو امیر، چی چیکار کردی تو امیر؟ شادی الان تعمیرگاه بود. تعقیبش کردی بود. اسمو فامیل واقعیتو می‌خواست. تو چی گفتی؟ گفتم نمی‌شناسمت. گفت پلیس میاره برام. گفت فجمان تو کماس. چی چیکارش کردی امیر؟ هیچ کار بابا اون شب که زدنش واسه پیش تو بودم. کی بوده؟ دو سه شب پیش. بعد چرا فکر می‌کنی کار توئه؟ واسه که من بدبختم. واسه کی رو پیشونی می‌داشته بعد شانس؟ اینا شوخی ندارن منم زن و بچه دارم بیا صراحه من همه چی میگم چی ها چیو میگی اصلا کاری نکردم بخوای بگی دروغ که گفتی کلک چه زدی دخترارو که سرکار گذاشتی آقا ماجرا اصلی الان زدن پژمانه بهت میگم من نزادمش چاجیام نمیره منم به پلیس بگه از کجا میدونی؟ میدونم لوم نمیده. اگه لوتا چی؟ اگه لو تو بیا شهادت بدی که بیشتر تو بودم دیگه. من شهادت میدم. باور نکردن چی؟ واجی تو نگران چی؟ آقا یارو رفته تو کما، تو هم با ماشین من رفتی. من چقدر به تو گفتم این کارا خراقه. بس نذره برام دردسر درست میشه. آقا من میام شهادت میدم که تو اصلا نمیدونستی ماشین من برای چی میخوام. پی میکردیم میام ازت میگیرم سوفتوشاپ مسافر کشی میکنم. لازم من نمیذارم برای تو دردسر درست شه. حالا میخوای چی؟ اگه طرف مرد چی؟ بمیره بمونه من نزده دمش با من ربطی نداره بابا پات گیره بیدم کن بابا باید ثابت کنی امیر بیا برو خودت پیش پلیس همه چی رو بگو بهشون من تعمیرگار درشو واق گذاشتم ماشین مردم نصف کاره مونده برو برو اولین خونه ای که با اپ ما اجاره رفته توی گیلان آسانی اشرفیه پولش هم بهکتتم به حساب. خوبه دیگه همین پیش بر کار کم کم میگیره. آ تا که بگیره کلی کار داره. آرش کجاست؟ خوشبینی. مشکلی چیزی داره؟ نه. به جواب نمیدم. چرخم تو اومد رفت. نمی سلام. سلام. من به نفشه شاکریم. من نفشه شاکی چقدر چهرتی مثل من آشنا هست کجا دیدم توی دی دانشگاه سال پایینی شما بودم بفرمایی تعریف این پروژه و اپلیکیشن رو خواستم ببینم چیه دریقه تعریفش از که شنیدی ام... تبلیغش رو دیدم. بعدم اپو نصب یادم آرش هست نه ایمده هنوز کارش داریم سب میکنم خودش بیاد میتونم بشینم خواهش بکنم بفرمیم من چیه نی کاری پیش اومده میام خب چه کاری؟ رامی ستش درمده که خانم اومده با تو کار داره کی؟ بنافشه شاکری چی کار داره؟ نمیدونم گفت با خودت کار داره به من چیزی نگفت من یکی دو ساعت دیگه میام به دخترشی بگه بگو اگه کاری ضروریه بمونه اگه نه که من دیر میام آره چیزی شده؟ نه چطور مگه؟ اب تو چند روزی چیزی شده کسی چیزی گفته بابام چیزی گفته نه نکار کامیار اومده سراغت. رونو جان نه فقط من یکم گرفتارم خدا حافظ آره شو. هیچ باید نیز کار اون پسر سامان باشه من از اولشم از این پسر خوشم نمیدن من دلیل نمیشه آدم به ضابط کنن منچین به ما گفتم بیاین آقای من فکر کردم خبری شده بیلن که فراری و پیداش نیست این که باورش رو میشه هیش که نمیدونه سامان کجاست آقا سم میخواید ببرامتون بیمار سام نه یه جوونی هستان رو میرسون شما مای مایسر رو پجمندار تزگیه مزایده ها چکار از بحرامی شکایت میکنی؟ من فعلا نه به فکر زمینم، نه مزایده، نه بحرامی فعلا به فکر سلامتی بچه هم شلو خود شخاش شد و جوانی شوش برگرده پس ما با اجزتون میگم خداحافظ خداحافظ آمه خداحافظ اینجا ماشی ماست کجا میگفته؟ به چیزی رسیدم خیلن که اون فراری و اینا هم دنبال روشی سلام بابا اه خیلی خوب باشه باشه من میام تا پنی دقیقه این اونجا هستم آره خداحافظیت نامادم یا مورد بیمارستان منو میرسین اونجا بله آقا حتماً به سر این روزا خیلی بدانم کسیم شرفتی آبا آبا آبا ندار آبا بسی هم دیگه برم آقایی کاری با من ندارم خیلی ممنون، خیلی مفت کرد آقا ببخش میکاییم شماره من باشین اگه کاری بردشون به زنگ زنین وارث رو بزنین تو من هنوز خیلی بهش زیاد نگیدم سلام قربان دست درد نکنه خدا خدا تا زندگیم با رونا روشن نشی کاری کنیم این کارا برای انتقام کردم نه زندگی برای خودت درست کردی اصلا دعوا چی بودی یکی با قصد کشت زدن حالا مطمئنی کار اونه زن میذارم جواب نمیدی دفتر نمیای نیامدی میخوای نمی نمی بری بعد چند سال اومدین از من ساحت خواهی قرار نیست برای یه کار و پسر من هست و نیست که شون بود بودون من این اتفاقات تویی تو ی تاری کیه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 ماه از را رسید روی را پل نشست دکمه های قلب من دون دونش شدم گفتم این یه است خیرش شد به آسمون همه ی ستاره ها دون دونه کل شدن بربونی ایش آخریم جورچینی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 مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تکیه ایهین جورچینی ایش جور